فصل هفتم تاریخ معاصر و ادامه مشکلات محیط نهادی، عاملان اجتماعی و خلقیات ایرانی پیشتر و در نظریات پایه بحث شد که نهادها شیوه های فکر، احساس و عمل نسبتاً پایداری هستند که تبلور پیدا کرده، ساختمند شده و جامعه را تشکیل دادند نهادها وجوه الزامآوری برای افراد ایجاد می‌کنند منطقی جامعه شناختی می‌گوید نهاد نوعی فشار و نفوذ در رفتار آدمی و رفتار فرد دارد البته خود نهادها نیز در معرض تحول هستند و افراد نیز می می‌توانند در تحول نهادها کم و بیش مؤثر باشند قبلاً بحث شد که نهاد را نباید شیوار تلقی کرد. نهادها با از حوزه های نمادین حیات بشر هستند، از نظام های معنایی، هنجاری و ارزشی نشأت میگیرند و تابعی از تحولات آنها هستند و به نوبه خود با این تحولات در رفتار مردم و خلقیات اجتماعی تاثیر میگذارند. در این بخش از کتاب تحولات نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دوران معاصر جامعه ایران را مرور می کنیم. خلقیات سیاسی دوره منتهی به مشروطه. در ایران سه و مناسبات اقتصادی ایلی، ارباب رعیتی و خرد مالکی وجود داشت. تحول مهم قرن 19 هم در نهادهای اقتصادی پدید آمدن شبکه اقتصادی تازه‌ای در ایران بود که در اقتصاد اقتصادهای مسلط جهان آن اصر یعنی روس و انگلیس شکل گرفت به طوری که در اوایل قرن 20 پنجاه و 56 درصد واردات ایران از روسیه و 28 درصد آن از انگلستان بود به عبارت دیگر حدود 84 درصد واردات ما از این دو کشور بود که به طور عمده کالاها و محصولات صنعتی جدید اقتصادی مسلط آن روزگار را تشکیل میداد ما به حاشیه‌ای از این اقتصادهای مسلط تبدیل شده بودیم این بستر جدید اقتصاد هاشیعی که در ایران شکل گرفت، خود به بستری برای رفت و آمدها، مناسبات، فعالیتها و ارتباطات تبدیل شد و به تحولاتی در نهادهای اجتماعی و اقتصادی ما انجامید. از مهمترین تحولات نهادی ایران طی قرن نوزدهم این بود که جمعیت شبانکاری و ایلی از سی تا پنجاه درصد در اوایل قرن نوزدهم به حدود 25 درصد در اوایل قرن بیستوم کاهش یافت. در عوض، جمعیت دهقانی از کف 40 درصد به 50 درصد تغییر پیدا کرد و جمعیت خرده برجوازی شهری از 10 درصد به 17 تا 25 درصد افزایش یافت. این نوعی تحول نهادی در جامعه ایران است که منشع فرایندی به نام شهر نشینی شد. سهم زندگی شهری، افزایش پیدا کرد. خورد مالکی در جمعیت کشور تقویت شد و به تدریج بازرگانی در کنار اقتصاد جهانی مدرن تکوین یافت. جمعیت باسواد شهری تا 5 درصد رشد کرد. کل میزان شهرنشینی در پایان قرن 19 هم حدود 21 درصد بود. مناسبات پولی گسترش پیدا کرد. بازرگانان و صنعتگران تازهی به صحنه آمدند. حتی کشاورزی در روستا نیز با مناسبات تجاری و پولی پیوند یافت و فعالیت اقتصادی در بسترهای تازه تنوع بیشتری پیدا کرد. بازرگانی خارجی هم به این ارتباطات و تحولات دامن میزد و آن را گسترش میداد. تحولات نهادها به چالشهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران دامن زد و میدان نیروها و تعارضها را متحول کرد از تعارض جدیدی که بر اثر این تحولات نهادی در ایران به وجود آمد تعارض میان مزیت‌های اقتصاد جدید بازرگانی و صنعتی و طبقات جدید متعلق به آن با مزیت‌های سنتی اقتصاد ایلی و سهبری دهقانی و قدرت اشیرعی و تایفعی و حکمرانی ایلی وابسته به آن بود این تعارض با چالش اجتماعی و فرهنگی همراه بود تلقیها، ها، عادات، ارزشها و هنجارهای سنتی و متعارف بحسگیز شد و دیگر نتوانست نفوذ مشروعیت و کارهای پیشین را در رفتار و خلقیات بخشهایی از جامعه داشته باشد. این در حالی بود که تلقی ها ارزشها و هنجار های نو و بدیل نیز جایگزین نشد و ارزشها و هنجارهای سنتی روز به روز و قشت به قشت در هم ریخت ولی ارزشهای جدید مثل قانونگرایی به شکل نهادینه جایگزین و مستقر نشد این وضع به بحران هویت انجامید جامعه دوچار ضعف هنجاری و نوعی بی‌حنجاری شد زیرا هنجارهای قبلی و تعادل سنتی به هم خورد و تعادل تازه و پویا جای آن ننشست بنابراین خلقیات اجتماعی ایرانیان علاوه بر مشکلات قبلی با مؤزلات تازه دیگری نیز دست به گریمات شد. وقتی سیستم دچار آنتروپی شود و تعادل خود را از دست دهد، چنانچه تعادل پویایی جایگزین شود، میتواند نوعی آنتروپی منفی ایجاد کند و سیستم را از کهولت و میرندگی خلاصی دهد. هنجارها، ارزشها و تلقیهای متعارف نمی توانست. در دنیایی با این تحولات نهادی نفوذ و کارایی داشته باشد و در نتیجه تعادل سنتی جامعه ایران به هم خورد. ولی تعادلی تازه برقرار نشد. چنانچه بخواهیم جامعه ایران را با تئوری‌های گزار توضیح دهیم، گزار ناقص و نامنظمی داشتیم. این مشکل دو علت عمده داشت. ساختاری، و کنشی اگر با دیدگاه کنشگرایی به موضوع نگاه کنیم از نقایس اساسی این گذار نخبگان عاملان انسانی و کنشگران بود است نخبگان ایرانی در قرن 19 با تغییر مشکل داشتند نخبگان حاکم را در نظر بگیرید حکومت آنها ساخت سنتی متسلبی داشت و نمی توانست آن جامعه پیچیده را درک کند وقتی به ناصر الدین شاه گفتند بچههای معقول دربخانه و جوانان و شاهزادگان دربار میخواهند برای استفاده از اوقات فراغت خود کلوب داشته باشند برا شفت و گفت بچهها غلط میکنند اما تعارزهای دیگری نیز در حوزه نخبگان سنتی وجود داشت ساختار ایلی حکومت قاجار سبب میشد میان برادران اموها یا شاهزادگان تعارضات درون قبیله ای و طایفه ای شدیدی در بگیرد و ملکه مادر، اعیان و رجال هر یک کشور را به سویی بکشند. وجود حرم سرا و همسران متعدد نیز مزید بر علت میشد. هر یک از شاهدختها با حکام، روحانیان و مقامات مختلف ازدواج میکردند و مجاری نفوذ پیچیده میشد و تعارض و کشاکش ها فزونی میگرفت. نخبگانی هم که در داخل یا هاشیه دولت طرح اصلاح نهادها را دنبال می با دشواری‌های بسیار روبرو بودند زیرا درباره الگوی اصلاحات نهادی در جامعه توافق وجود نداشت عباس میرزا، امیر میرزا حسین مشیر و امین الدوله معرف چهار نسل اصلاح دولتی در دهه های مختلف قرن 19 میلادی هستند که یا سربنیست شدند و یا برکنار از سوی دیگر، الگوهای تغییر ایران حتی در میان نیروهای تهاولخا مورد اجماع نبود. برای مثال، الگوی تغییری که میرزا حسین مشیر دوله دنبال میکرد، الگوی سرمایهداری درگشوده به خارج بود. او ریشه همه ترقیات را، ترقی اقتصادی، علمی و فنی کشور میدانست و فکر میکرد پیش درآمد بسیاری از چیزها توصیه اقتصادی، علمی و فنی است و این امر میتواند موجب رواج کسب و کار، گسترش بازرگانی، تنوع اشتغال و پیشرفت صنعتی کشور، توسعه کشاورزی و بهبود وضع مدیریت و تکامل فرهنگی و حتی رشد و ارتقاء اخلاقی و معنوی جامعه شود از نظر الگوی مدیریت هم بر الگوی ارفیسازی یا سکولاریزاسیون از بالا تاکید داشت در دوره صدارت او، گامهای بلندی در جهت عرفی کردن مناسبات حقوقی و سیاسی کشور و ایجاد دادگستری جدید برداشته شد. به طوری که سه دهه پیش از مشروطه، طرح نوعی قانون اساسی از سوی دولت وی ارائه شد. ولی الگوی تحول جامعه از همان زمان محل مناقشات بسیار جدی بود. مشکل دیگر موقعیت هاشیهی ای ایران بود. ایران حتی از های استعمار شدگی هم برخوردار نبود. مثل مزیتی که کشور هندوستان به منزله یک کشور تحت استعمار داشت. ایران در چنبرهای رقابت دو سیستم سیاسی و اقتصادی انگلستان و روسیه گرفتار بود. روزها های تجاری و بازرگانی بسیاری در اختیار داشتند و بر اقتصاد کشور مسلط بودند. انگلیسی ها هم در مقابل با حریف سعی داشتند در میان طبقات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نفوذ کنند. به این ترتیب تعارض و چالش هایی در جامعه ایران شکل می گرفت که بیشتر باستابی از کشمکش منافع اقتصادی و سیاست های مسلط جهانی بود. ما هاشیهی بر آنها بودیم و تابعی از کشمکش منافع آنها. مرکز صقل تحولات نهادی در جامعه ایران و کانون تصمیمگیریها بیرون کشور و نزد دو قدرت حریف بود. ها در مقابل هر امتیاز و موفقیتی که انگلستان می‌توانست از آن سود ببرد، جار و جنجال می‌کردند و به مخالفت‌های برحق یا ناحق دامن می‌زدند. متقابلاً انگلیس نیز در مقابل روسیه از چنین شیوه‌هایی بهره می‌گرفت. ارسه سیاسی بسیار ناپایدار، پیچیده و تیره و تار بود و تنشها، تشنجات، کشاکش‌ها و تغییرات مبهم و نامنظم یک فضای سیاسی مشهون از دسیس چینی، بدگمانی، بی‌اعتمادی و صحنه‌گردانی ایجاد کرده بود. اینها می به اعتماد به نفس ملی در ایران لطمه بزند. سرمایه های اجتماعی مانند اعتماد، مشارکت، پیوند، همدلی و غیره تحت تأثیر این فضای نامساعد قرار می گرفت تحولات سیاسی بسیار آشفته، بیقاعده و ناپایدار سبب میشد محیط مناسب نهادی برای شکوفایی و رشد اخلاقی، توسعه اجتماعی شدن مسئولیت پذیری، هنجار پذیری، مشارکت انتقاد پذیری، نقادی و سازندگی تفاهم و شفافیت فراهم نشود. خشکسالی، قحتی و بیماری‌های مسری مثل تاون تا و وباء نیز وجه دیگری از مشکلات بود. به دلیل فقر، گرسنگی و قحتی‌های سهمناک، آشوب‌های پی در پی به وجود می‌آمد. در یک نمونه به سال 1248 صدها هزار نفر جان باختند. ناامنی‌های شدیدی نیز در ایالت‌ها و راهها وجود داشت. در چنین شرایطی، روشنفکران، روحانیان، بازرگانان، پیشوران، کسبه خردپا و توده ناراضی اعتلافی را حول یک جنبش اجتماعی شکل دادند. انگلستان هم به اقتضای موقعیت پیش گفته در ایران از این جنبش اجتماعی حمایت کرد و همه یک صدا شدند. اعتلاف قوی تر شد و یک قیام مهم اجتماعی به پیروزی رسید و در نهایت شاه به مشروطیت، تن داد قانون اساسی تنظیم شد و مجلس شورا به وجود آمد در ظاهر مهمترین مانع ترقی کشور برطرف شد اما مدتی پس از پیروزی مثل بسیاری از روندهای تاریخی قبلی این اعتلاف نیز از هم گسیخت و تعارضهای تازهی از درون مشروطیت سربراورد. در تحولات معاصر ایران شاهد سیطره سنگین سیاست بر سایر نهادها هستیم این نهادها بر اثر تحولات نامنظم سیاسی و وضع بیقاعده و غیرقابل کنترل تحولات سیاسی نمی توانند سیر تحول و توسعه آرام و منظم خود را طی کنند ساخت قدرت به شدت متسلب است و در برابر میل به تغییر واکنش نشان می دهد هر گونه ایجاد تغییر ناگهانی و سطحی در نهاد دولت وزن را از آنچه هست آشفته تر می کند. ضعف های ساختاری سبب می شود تغییرات از پایین و از متن جامعه به درستی هدایت نشود در مشروطیت صاحب قانون اساسی شدیم اما به تعبیر کاتوزیان قانون اساسی که فرمولی ریاضی در سطح بسیار بالا بود در دست مردمانی افتاد که آمادگی کافی و پایه‌ای فکری و رفتاری نداشتند تا با این فرمول مسائل خود را به درستی حل کنند در کشورهای دیگر مثل انگلستان و فرانسه قانون در تاریخ تحولات نهادهای اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ریشه داشت و از متن این تحولات برآمده بود. ائتلاف ناپذیری موجود در فضای سیاسی ایران یک مشکل عمده بود. وفاق و همزیستی مسالمت آمیز در یک فضای آزاد تمرین نمیشد. هر کس به چیزی قائل بود و با ناشکیبایی همان را عمده میکرد. گروهها برای یکدیگر مشروعیتی قائل نبودند. اختلاف، چانهزنی و رقابت به صورت سالم شکل نمی گرفت، هر کس خود را حق مطلق و دیگری را باطل محض می دانست. میان اعتلافیون دیروز، تعارض واگرایی و ناهمگرایی شدید به وجود آمده بود و این خود مشکلاتی برای جامعه ایرانی و فضای سیاسی ایران ایجاد می کرد نمونه آن وضعی بود که پس از مشروطه شاهد بودیم. هر گروهی، مطالبات عقیدتی، مسلکی، قومی و گروهی خود را امده کرد و میان منافع فردی و گروهی با منافع عمومی و ملی تعادل و ترکیب وجود نداشت. بسیاری که در عرصه فعالیتهای اجتماعی حضور داشتند، بیش از آن که در پی منافع عمومی باشند به شکل ناهنجاری به دنبال منافع سنفی و گروهی خود بودند.